چند روز دیگه ماه رمزانه سر این حلی مینه حسابش که دوب میشه آه... بفرماید سلی برد زیر کتیتن روشن کرد. بله بله. خوشمزه هست گوشه جون چیزی شده آقا تو فکر سامو بهش نمیخورد قاتل بش. باش با شهر سدی نه تازه رفتارش با شما میگم اگه چیزی بودش که نمیشه براتون توضیح بده نه برای همین وقتی که تو پارک دستم بردم بالا که پلیسای نزدی واسش وقتی بهم به گفتیم میخوایم برین کیو ببینین با خودم گفتم یه همچین آدمی نمیتونه قاتل باشه خواستم حرفاشو بشنوین که ادفعه حالتون بد شد و من دویدم اومدم سمت شما هستن یادم رفت ولی وقت فراغون داشتی که به پولیس زنگ بزنیم هست حواسم هم به زمان نبود یادم رفت اگر نه زنگ میزدم وقتی به حرفاش فکر میکنه یادم نمیاد که کنار مغازه ما انباری باشه که تونه آتش تو زیر یه سایینا سوخته باشه هنی میگه؟ نه میدونم میگم شاید یه سوی تفاهم یا یک تفاهم در آخر حتما اون هم واسه حرفاش دلیل و داره آقا دارواتونو خورده یه اون از مونده کجاست من بیارم براتون؟ توی نکار هرم میارم. مردی خوبم همون هم, من هم شما خوبی من باید شما رو ببینم نه نمیتونم از خونه بیام بیرون زحمتی نیست شما تشبیانی خونه ما خیلی ممنون من خداحافظ خیزده هم داری بشین بشین یه بریزم با هم بخوری تو که گفتی از شادی دلخوری تلفناش رو جواب نمیدی چی شد بهش زنگ زدی مجبور شدم میخواستم والا قاسمو بزنم. چطور حالا قاسم؟ خوبه. مشادی خانم گفت مثلا بیمارستانم نبردنش، خونش درسته. نمی میرم ملاقاتش؟ دیوونه شدی؟ برم که منو میده دست پلیس. آگه میخواست این کارو بکنه که همون دفعه اول زنگ میزاد به پلیس. دفعه اول میخواست حرفامو واشتنه، ولی این دفعه حتما زنگ میزنه. اتفاقا الانم این کارو نمیکنه. چرا؟ چون حرفاتو شنیده. بله. شنیده ولی باور نکرده اصلا داداش باورم بکنه به ضرر منه میشه خودش میگه آره مده به خاطر انتقام پجمان و کشته معلومه دیگه خیلی خب حالا با این وضعیت تو میخوای چیکار کار بود کن که رویت گفتم. خر نشو امیر بابا تو خون زندگیت هست و نیستد اینجاست خارج رفتنه داخل چیه وضع بدتر از این نکن پسر روزه من نداشت بدتر از این نمیشه آخه مردم مردوم میخواد چیکار بکنه این همه بهش وعده و وعید دادی خب، میتونه با من بیاد خودش نمیخواد بیاد خب نمیتونه بیاد دست خودش که نیست آقا من نمیدونم من باید برم الان اومدم اینجا که با هم بریم محضر محضر واسه چی خب وکالت ب... بدم بابت خونه خونه خود سخت فروش میره زمان میبره خونه رو بفروش بعد پولش دولار کن کنم بفرستم من الان نمیتونم گیرم ماشین مردوم زیر دستم میبینی که مجید تو اصلا متوجه و من نیستی آقا نمیگم نمیام نمیکنم که میگم الان گرفتارم چرا بیدن فردایی پس فردایی قرار میذاریم اون موقع بریم چرا ناراحت میشی نر نراحتی نداره من گردنم زیر تیغه تو نشستی اینجا به خطر دو زار درمت دم شما گرم کجا میری امید حامی با تو هم بیا ببین این عکسم مشخصات خونه ای که تو اپ ما ثبت شده این خونه ای که مشتری رفته خصوص کردن این واسه خیلی کار سختیه بالاخره ممکن ممكنه از صد نفر دو نفر بگم آدرس و عکس فایف ما بعد مثل و اپلیکشن های دیگه بخش شکایت مشتری را وندازیم اگر شکایت درست بود که خسارت برداختن اینطوری ممکنه خیلی ضرر کنیم آشن نخورده و دهنه سخته بله ضرر میکنیم ولی هم اعتماد مشتری جرد میشه بر خودمون تبلیخ فکر بیمو حقوقشو کردی؟ نیمتونه که از کارمنده ای که داریمون برای این کار بذاری؟ رونا چی؟ میگم اینکه از این کارمنده رو بذاریم نه این نظارشون خیلی شولو هر هیچ. یعنی فقط دنبال این بود که پول بردارو بره چرا این حرفایی تکرار میکنی تو خودت هم میدونی عرضه شما اب خیلی بیشتر از پنجام میلیون تومن از کجا معلوم آراش مشتری دست به نقد داشت یادت نیست این چه صوره برای منو تو گفت که اعتماد ما رو به دست بیاره؟ حرفای اون هست است. اینکه کار شرکت داره میگیرم هست شکایتی به بنفشه چی؟ اگه توی دادگاه دیویس میلیون از ما بخواد چی؟ رونا تا کی این از آرش دفاع کنی؟ تو تکلیف تو باش یه سره کنی. چی چیو یه سره کنم؟ تو مشکل واسش پیش اومد ولش کنم بذارم برم؟ چه مشکلی؟ خب چرا بهتون نمیگه؟ چه میدونم شاید داره مراهات حال همون میکنم نمیخواد نراحت شد تو چرا انقضیوت غذابت میکنی من بر چیزی که میبینم غذابت میکنم شاید واقعیت چیز دیگه ای باشه پس انقدر سعی نکنم من نسبت بارش بعد بید برایش حرف زدیم؟ بالخرای فهمیدین چی شده؟ هم. یعنی اصلا با تماس درماث نداشتیم؟ چرا ولی جواب درست های برم خب نپرسیدین ازش شر تلفن منو جواب نمیده؟ گفتیم بهش تو چه شرایطی هم؟ ببخشی دو نخونه من مشکری دارم شما قول ندیم؟ بله ولی الان خیلی سخت سلوغی نمیتونم صحبت کنم خدا حافظ. چیز خواهیم نظریه خالی می اومدم با شما کار دارم آرش خوبه؟ راستش برای همین موضوع اومدم اینجا من با آرش حرف زدم ظاهراً یه دختری به اسم و نفچی که قبلا با آرش کار میکرده مدهی شده تو این برنامه سهم داره و از آرش شکایت کرده بله اینو میدونم ولی فکر کنم چیز دیگه که آرش رو ریخته بهم چرا این فکر رو میکنی؟ چون انگاه مسئله خیلی هم براش مهم نیست فکر میکنم یه چیز مهمتریه که اینطوری فکرش رو مشغول کرده پس تو ظاهرم همه ماجره رو نمیدونی آرش به این دختر پول داده آرش بهش پول داده؟ آره بر این که از شکریتش صرف نظر کنه که با این کار مخالف بود گفت پولش دور بهش نمیدم مجبور شده حتما به خاطر شرکت من بازم با نمیشه آرش نمی کنه این کار اصلا برفرض اینم که بکنه به من چرا نمد بگی نمیدونم شاد فکره شما دستوره اشتباه میشین و فکر میکنین در مورد و به بهتون دروغ گفته مانو جان رامین برادر من تا خانم را سلام راش. باز. سلام باز. من سر میرم. کارخونه اوزید به اینجا باشیم. باید ببخشی. رامین از دسته آراش عصبانیه. آراش کارو فعل کرده رفته. تو چی؟ تو هم از دستش عصبانی هستی؟ من بیشتر نیگرانشم آراشتا رو خیلی دوست داره من مادر همین چیزها رو خیلی خوب میفهمم من با ازدواج شما مخالف بودم میدونی بزرگترا همیشه بر اساس تجربه هایی که تو زندگیشون داشتن یه حرفایی میزنن که شاید به نظر کهنه بیاد نظرم عوض شده فکر کنم تو آرش با هم خوشبخت میشین نکنه خیر ببینی دکتر قریبه بیام آخر شب قراره بهم سر بزنه من منتظر مهمون ای هستم کی آقا حسابدار پشمان گفتم بیاز میخوام راجب سامان باهاش حرف بزنم تون برم دیگه شما کاری نداری آمد در رو واسهش و واز کن یه چند دقیقه بمون بابا من با این وزن نمیتونم ازش پذیرایی کنم میشم. میشهحتما چشم سلام خوش آمدی بفرمی حالت از مهمان ما پذیرایی کن قهل چشمت من حالت خوش نیست؟ شده؟ نه خوب این جوانی مدتی کمکم میکنه اسفال دستم شده نمیدانم اگه نبود چه کار میکردم ازت خواستم بیشم یه خواهشی ازت میکنم بفرمی روز من حرفای سامان رو همش رو شنیدم اون حتی قسم خود که قاتل بچه من نیست ولی حرف که چیزی رو ثابت نمیکنه من مطمئنم اون این کار نکرده کجا اینقدر سامان برنگشته اونجا. من دوستشم از دوستشم پرسیدم. گفت هستی اومد ماشین رو به هم داد رفت خونه خب آقا قاسم اگر سامان این کار کرده بود چرا فرار نکرد؟ چرا هنوز مونده؟ من من باید دوباره ببینمش. باید باش حرف بزنم سامان دیگه جواب تلفن من نمیده دیگه اعتماد نداره خیلی از دستم نراحته که شما رو بردم پیشش خلاصای سعی کن پیداش کنی باید ببینمش یه چیزایی گفته که صحت و صحبش برای من ثابت نشده من هر چی توی گذشته فکر میکنم حتی جای پایی از پدرش اون فاجعهی که رخ داده نمیبیدم بالاخره اون برای حرفش باید ...دلیل و مدرکی داشته باشه. همه سعی همکارم پیداش کنم. قارش کن بابا که بیاد پیش من. شاید واقعا اون قاتلی و ای من نباشه. اون حقی به گردن من داره در اون صورت که... ...هجنان من نراحت. درم بخواید بفهمم. اجزتو من دیگه آه. ی داد تو بخور باد برو. میام رای کافی. من خودت هستم. خوشم. آبای زد تو منم ماشین وگیرم. حالش فکر میکنم خوب نبود. شادی شادی، واسه می خوام باهت حرف بزنم. من باهت حرفی ندارم. چرا مگه من چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ واسه چی مدی تو خونش؟ برای چی داری از پدرش نگهداری میکنی؟ من مجبور بودم. واسه چی مجبور بودی؟ نمیتونستم تنهاش بذارم، هیچ کسی رو نداشت. نه. تو این کاری کردی ببخشاتت. آدિજા من فقط خواستم کمکش کنم همین این هم آدم چرا تو باید کمکش کنی میفهمی اگر بفهمه تو قاتل پسرش چی میشه بابا اگه یه درستان احتمال این باشه که قاتل پسرش ببخشه با این کاری که تو کردی بعدن لج میکنه بهت گفتم من مجبور بودم بابا پیرمات کسیو نداره داری چیکار میکنی دروغایی که به مامان گفتی کاری که با رونا کردی دروغایی که داری به پدر پشما میگی تو نمیدونی من تو چه برزخی من همش فکر میکنم کابوسه همهش فکر میکنم خواب و خیاله الان بیدار میشم اینا رو میفهمید؟ میگی من چیکار کنم تو برادرمی لو بری اعدامی از طرفم هم فکر میکنم اون سامان بدبخ پیجمانو کشته بیگنایشم فقط یه جور ثابت میشه اونم که قاتل هستری پیدا بشه خارش سامان به من گفته که یه اخت کنیم بریم من قبول نکردم من چیکار کنم نمی دونم باید چی بگی نمیدونم جارت ندارم برم خودم معرفی کنم نمیدونم نبایدم معرفی کنی حکمیت اعدامه همش اقصیر منه به خاطر من با پیجمان دعوا کردی اقصیرتون نیست چرا من نباید اون حرف رو بهتون گذاشتر که نمیشه کاریش که اگه میشدش که من خودم بودش پیشمان زنده بشه نمیشه چی شده؟ ممور اونجا چی کار میکنه؟ آرش شادی من باید دفتر. یه قراری یه جوری باز با قاسم بذار که سامانو ببینه دوتا سلام سلام عزیزم ماما خانی می که با درمو باید رو خیلی سباب داره سباب یعنی چی سباب خباب یعنی کاری که خدا خیلی دوست داره یعنی هر کیش غذا نمیخوره خدا دوستش داره؟ نه دخترم ببین آدما غذا نمیخورن به خاطر اینکه یاد اونه باشن که غذا ندارن یعنی ما به وقتی که غذا نمیخوریم واسه اینکه یاد اونه باشیم من و سرپرست یتیم در بهشت کنار هم خواهیم بود سلام جم خوبی مامورا کجا؟ مامورا مگه اینجا مامور نایمده نه مامور نایمده اینجا خب نظری زنیزد گفت نابول خودش کجاست؟ تو تا پس باره توزی. چه توزی میدی؟ برای چی درو گفتیم مامور اومده اینجا من وسط این همه وقت که شونده اینجا. که بیا اینجا بتونم با حرف بزنن. زاده بس زرد مگه؟ آره شو باره پول دادی؟ چرا من نگفتی؟ نکن اینو واقعا مال اونه. تو فکر میکنی من دروغ گفتم آره؟ آره دروغ گفتم. خب پس برای چی بعد این همه به پولو بهش بدی؟ کی هم چه حفی ها؟ مادرت امروز اینجا بود. ش خوش بود فهمید مشکه تو چیه؟ با هم این دروغاتتون بنده خودم کهشونی ورددی اینجاره؟ من نگفتم خودشون من بخواست خیال من رو راحت کنه. هم بلند شدی رفتی پیش این اون حرف زدی که همه رو نگران کردیم. آا آره شنیگاه خودت کردی هرکی قال روز تو رو ببینه نگرانت پیش اصلا لازم اسم من چیزی بگم آقا من نمی خوام نگرانم باش. اگه میشه؟ چو داری از ما پنهرو میکنی آرش هیچ چه اتفاقی که به خاطرش هم که دروغی مادرک گفتی. کایه هیچ چیزهایی می من نگرانم خیلی؟ چی گفته؟ میخوام از خودت بشنوم. تو برای چی با کامیار حرف زدی ها؟ آرش الان مسئله تویی نه کامیار. اتفاقا مسئله همینه. بهت گفته بودم اون مرتی که پاشو از اینجا ببره، اون وقت بگم میش میاد اینجا راجه به من مزخرف میگه، تو حرفه اون مرتی که رو قبول می‌کنی حرفای من دانم... آرش. آرش. آرش. واسه اشتباه کرده ما به درده هم نمیخوریم چی تو لیاقت همون ادمه. همو ادمه احمق نوکیسه. خیلی به هم دیگه میای. دست از من مرد رو اونم من نمیخوام دیگه. بفهم. باشی بهش چی شده؟ دروش میکنم با کی؟ با قارش زنگزن ارژانس خیلی باید صدیم بایده من زنگزن اینو بگیم زنگزن ارژانس دیگه قول کن این کاری که کردین درست نبود. واسه خاطر خودش این کاره کردم. آقا سم بعد باش حرف نمی و میفهمین قطع کارمون نیست. میدونم اما خب بهتر بود قبلش به خودش میگفته قبول نمیکرد. سامان رو تو شرایط بدیه. تحت فشار نمیتونه تصمیم بگیره. من و شما باید کمکش بکنیم. من که هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم. میدونم اصلا واسه همین اومدم اینجا که آدرس خونه رو از شما بگیرم. چرا زنگ جواب نمیده من با آقاقاسم حرف زدم. میگه مران تردید دارم قطر پسرش کارون باشه به فرض که اینطور باشه مهم پولیسه میدونم ولی همینم وضعیتو وضعیت رو خیلی بهتر میکنه ببینین اگه آقاقاسم قاسم بری پیش پولیس بگه قطر پسرش کار سامان نبوده خب وضعیت خیلی بهتره دیگه الان آدرسش رو به میدین من آدس خونه شونو بلد نیستم چرا نمیخواییم کمکم کنیم؟ واقعا بلد نیستم انتظار داریم باور کنم سعیمی ترین دوست سامان آدس خونه بلد نیست ببینین آقا مجید من میدونم که شما هم میدونی سامان قهر فرار کنه مطمئنم شما هم که فرارش کار بدتر میکنه خب من باید حرف بذارم بعد منصرفش کنم هاگه متوجه بشه که من آدرس شده خیلی از من ناراحت میشه بذاری من یه خورده فکر کنم بهتون خبر میدم اون موقع خیلی دیره سامان رفته من الان باید باش حرف بزنم آقا مجید خواهش میکنم یعنی لازم نیست ببریمشون بیمارستان؟ نه مشکل خاصی نیستش یک حمله عصبی و افت فشار اگر مجدد هم حالتی بهش دست داد به همراه تعویم اون وقت انتقالش بده بیمارستان خیلی ممنون. لطف کرده خدا حافظ دیما یه لیوان آب میشه بیارین برشون بله شکر به خیر بذاشت چرا نمیری به یک کارت من اومده خبری بهت بدم دیدم حالت بده می‌خوای زنگ بزنم به بابا یا رامی؟ نه چرا؟ نمیخوام چیزی بفهم می ترسی بفهمند که آرشین برای سر تو ورده کورس بگو مرت باید خبره خیلی عاشقایی سبب کام نصف پولی که خاصی هم است هست یکی دو هفته دیگه ولی قبلش باید بری شکایتت رو پس بگیری بفهمی؟ نمیخواد تهدید کنی یه آدرس برایت بپرستم شب ساعت 8 بیا پولتو بگیر من به تو اعتماد کردم نموگا جاو حالتون چطوره؟ ممنون. من چند بار زنگ زدم به گوشی خانم نظری جواب نداد. رفتره بله تو اتاقشونه بچه رو جواب نمیده؟ شما که رفتین حالشون بد شد زنگ زدیم ارژانس اومد بعد دیگه الان تو اتاقشونه دارن استراحت میکنن الان چطوره؟ الان بد نیست ایشالله بهتر میشه دقیقا همین بود قیمتی بهت گفتم میمزم آبا بیشتر برداریگه تو این بازار کساد قیمت خوبی بهت گفتم شادی. بس چی اومد اینجا؟ یه دقیقه بیا بیرون کارت داره آقا چی شد؟ بالاخره فروشندهی؟ بایست اومده چیکا دار اینجا؟ بهت میگم چیکار داری اینجا؟ اگه با خودش پلیس میورد من چیکار میکردم؟ بس هم خورده بود تنها بیاد فقط میخواست حرفای تو رو بشنوه بابا پیره هرده بیچاره داشت سکته میکرد اگه میورد من چه خاکی میرختم تو سرم؟ چطور نمیفهمی اینا رو؟ حالا که اتفاقی براش نیفته طوری نشود. حالا وش بولن شد اومدی اینجا؟ چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ چه جوری باه در بزنم؟ من بهت میگم بیا عهد کنیم بریم رفتی باوی خودمو میام روز وردی با من سر قرار. خواستم کمکت کنم. اینجوری؟ من طوری دیگه بلد نبودم. بعدشم کاری که من کردم خیلی جواب داده. یعنی چی؟ یعنی شک کرد تو قاتل پسرشی آها، الان باید خوشحال باشم مرسی که شک کرده من قاتل پسر پسرشم الان چیزه کمیه چی داری میگی اصلا اهمیتی نداره اون پلیس با من مزنونه اونا بعد برم من هیچ راهی ندارم جز رفتن اسمش رفتن نیست فرار کردنه اسمش هر چیزی که هست من بعد انجامش بدم واسه اینکه اینجا هیچ‌کس کارف منو باور کنه من باورت کردم به خدا پدر آقا پژمان داره باورت کنه تو یه بار دیگه بهش فرصت بده باش حرف تو دیوونه‌ای دیوونه ای. تو دیوونه ای. به خدا دیوونه‌ای شد آقا بمونم برم میام الان من دارم میرم همه وسیله‌های خونه رو دارم می‌فروشم خونه نمیه به کلت دادم به مجید برام بفروشه تو من میای یا نه؟ سامم به خدا رفتم به ضرارت هم میای یا نه؟ سامم یکی هم دیگه صبر کن و... نمی آید. گدافز سامم سامم یکی هم حرف منو پوش کن تو داغ خیلی خواب جول پلاسون رو باید جمع کنین از تو ما این سرا برید. تو اصل اسلی ماجرا منم. خداون من پای همه عواقبش <تصفيق> باشه. ببین اسپراشو بش. دیگه شماها. دیگه وقت دوباره رو ما رو نیدید. آرش تو گفت فرار کرده. دیدین چندتا تا خونه مادرونو نابود می‌کنه. پسر پسرم هر چی بخواد از گوتایی نمی‌کنه. می‌خوای من بگی بین تو آرش چه اتفاقی افتاده؟ یه روز خوشبختی کنار هم. می‌خوای به مامان چیزی بگی؟ میگن قتل کردم.